بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وضعت. Дарси панжум. Из китаб الطلاق. Дар جај رасидим. Муалив ми говорим, المасалету садисад ху. Ар-р-р-дж-ع-то. Масалей р-р-р-дж-ع-то. дени зен. Вакті الطلاق واقع Ед Хуб, طلاق р дж и طلاق مسائل شقہی درحقت بوخود تقسیم بندی ها داره انسه باید تقسیم بندی ها را تصور کنه زیرا وقتی انسان طلاق میکنه همسرش رو گفتیم میشود طلاق های هست لفظ های صریح و لفظ های کنایی لفظ صریح احتیاج به نیت نداره لفظ های صریح احتیاج به لفظ و طلاق بدعی. طلاق سنی اما طلاق طبقی ف... فرموده شریعت انسان اگر طلاق بکنه و میشهد طلاق بدعی مخلافت کردن شریعت در نوعی طلاق یا در عددش در عددش یا در زمانش در وقتی که ممکنی سردادن سردادن سردادن این طلاق بدعی اکه مسئله بعدی بعد طلاق هست نام طلاق رجعی و طلاق با این ایک نوعی دیگر هم هست نامش طلاق رجعی و طلاقی با این. مقصود از طلاق رجعی طلاقی شوهر میتونه زنی خود را به نکاح کردن بر زنش سر میتونه طلاق میکنه و پیش از عده بود شدن میتونه بر بگردانه. به ن... نکاح به عقدی نوه حتی به روزگی زن و به رازگی پدر مادرش حتی به یک محر زیر حال زنش حساب است اینا میگن تلاق رجعی طلاق رجعی یعنی تلاقی است که شوهر میتونه بعد از واقع کردنش همسری خود را بر بگردانه به عقد نو و به روزگی زن خب اینا میگن تلاق رجعی دویم تلاق باین هست باین با یعنی جدا تلاق باین با طلاقی هست که شوهر وقتی واقعش کرد نمیتونه کی زن خود را بر بگردانه و حق برگردانیده نداره مگر گاهه به نکاح نو میتونه برگردانه و گاهه یک شوهر دیگر میکنه بعد از او میتونه باید برگرد بگیرش تا اگر شوهر نکنه و شوهر سرش نتیه گرفته نه میتونه معلوم شود در این درس میخونیم طلاق دو نوعه است طلاق با این طلاق رجعی رجعی یعنی رجوع گشده گست یک برگردانیدهش میتونه به نکاح ن بی رازگی زند یا که ولیش بی مهر بی چیم زند شد. فقط طلاقی را واقع کردست و با میتونه بشرتی که حالی شرطشه میگین طلاق رجعی کدا وقت میشه و کدا وقت سعی هست دویان طلاقی با این هست با این یعنی تلاقی که جدا شدست بین زن و شوهر گاهی با اینه با با این دو نام میشه با این سغرا با این میده که میتونه شوهر زن خود را بگیره بعد از نکاح کردن لیکن مهرینه و به ماهرو به ولی و برازگی زن و فقط یک طلاق کرده باشه مثلا که مثلا می بینیم. کی طلاق با این سوغرا میشه اما با این کبرا با این یعنی جدا شدن با جدا شدن این کلانه که امکان نداره زن شوهر زن خود برگرداند برگردونه دوباره بگیره حتی اینکه این شوهر کنه و شوهرش او را سر بتا و بعد عده بشه و به هر حال هلی ذکر میکنیم خوب اکرون حالتوشه мегуем кадо вакт طلاق طلاق رجعی аст вакт кадо вах боин мешава кадо вах боин суغроа аст боин майда ва кадо вах боин кубра аст ва تفсилат ча зikr мекунед дар ҳақiqat ин масъаи ра дористан ва тасаввур карданш бисёр ҳаммуҳим аст мутаассифона бисёр инсонҳо парвои ин масъаил надоранд ва баъзе шахсон طلاق нигоҳ ҳам намедонанд ва баъзе дигарш баъзе ра фтвон пурса хато фтвош метия аллоҳул خب اکرون مگذاریم با شرح همین مسئله ایلی که صحبت کردیم مؤلف مگاد المسئلة السادسة الرجعة مسئله بازگاردانی دن تعریفها لغتا المرت من الرجوع يعني طلاق رجعی از کلمه رجع. رجوع گرفتگس يعني بازگاردانی دن و شرعا تیره مگان طلاق رجعی ای اعادت زوجته المطلقه طلاق غیر با الى ما كانت عليه قبل طلاق بدون عقد. طلاق رجعی یعنی برگردانیدن شوهر زن طلاق کرده خود را همون طلاقه که طلاق با این نباشه. با این جدای جدایش ده باشه ده حالت نه بلکه طلاق رجعی باشه. یعنی شوهر زن خود را برمگردانه با عقد با نکاح. سر بشرطه که چی باشه در حال شرطشم نبهیم. کلام، طلاق رجعی همین را میکرد. طلاق رجعی طلاقی هست که شوهر زنی خود را طلاق میکنه شرطاشه که بعد از دخول یا بعد از داخل شدن بعد همخوابگی یا خلوه, صحیحه، خلوه صحیح هم صحیح به اجماع علمها ها ثابت است یعنی زنی با شوهر در یک خانه استادن نکاح کردن و با هم استادن اگر همخوابگی میکردن میکردن اگر چی نکرده باشه همین هم, خوب، دخول یعنی هم خوابگی کردن خب طلاق رجعی از کی واقع میشوه هر مردی کی زنی خود را همون زنی کی با او همخوابی کرد یا خلوای صحیح خلوای یعنی با هم در یک جا توقعه استادن 2 ساعت 2 ساعت مثلا این وای و در نکاح صحیح نکاح صحیح به یا گوم عوض نکاح واقع طلاقی بشه اگر را خلعش میگن در حالت دیگه رجا نداره نکاح صحیح باشه و به باشه. به مقابل. پیش از بودشیدن عده. ایده. عدهش اگر سه حیث باشه. پیش ای سه حیث گردانیش باشه. پیش ای عدهش اگر بازگرداندنی باشه. پس در این حالات به نکاح بر میگردانه. به عقد. به مهر به روزگی زن حتی. به رازگی ولیش. خب گفتم اول شوهر معلوم شد که غیر شوهر حق نداره. نکاح کنه. ای طلاق, کنه. طلاق شوهر میکنه بعد از داخل شدن بعدی همخوابگی گفتیم معلوم شد پیش از همخواب یک کس نکاح کرد و در جاش سر داد این عیده نداره و همچنین رجوع هم دیگه نداره یعنی نمیتونه با برگردنش بلکه با برای یه برگر نکاح کردن شرط است که رازگی و بر... یعنی عقد نکاحی نوقتی نکاح میکنه در نکاح صحیح معلوم شد نکاح فاسید باشه اگر رو رجاعات صحیح نیست بازگرداندن زن صحیح نمیشه نکاح اگه شد تا فسخه فسخ یعنی نکاح بود بیکاره بی عوض باشه اگر به با عوض باشه یعنی به با پول داری حالت حق نداره برگرداند. دیگه زیرا در این حالت زن آزاد بشه وقتی پول داد و خودش رو که آزاد کی کرد تمام دیگر حتی طلاقش هم که کنه دیگه حق نداره که زن شوهر برگردونش حتی یکی خود راضی باشه با عقد نه پیش از بودشدن عده معلوم شو که رفت و عیداکی بود شد، یعنی سه هایز کی, کی بوده مثلا وقتی عیدا وقت شد، سه هایز بودشد، تمام دیگه سهم هایز که خوش شد و بازیکت به همه دیگه شوهرش حق نداره برگردونه، اگر و بردش بازش نگردونده باشه، حتی این کی تا ایسری بنا نو نکاحی نو تیجش داره. خب را میگن طلاق راجعی، طلاق راجعی، طلاقی طلاق هست کی شوهر زنی خود را سرمت و حقی به نکاح به عقدی نوی میتونه بر بگردانه. لیکن به همین شرط ها. شرط گفتیم که پیش از ایدهش بود باشه. مثلا اگر افتو حامل باشه تا طوالت کردنشه. اگر افتو حیز میده باشه تو سه حیز شده نه. سه حیز شیدو نگرداندش. تمام دیگه ای زن ایرا با این سغراش میگن جدا میشه جدای میده حقیقی میتونه بگیره و لیکن به نکاح نو خوب طلاق یکم باشه یا طلاق دیم باشه اما طلاق سهیم که کرد دیگه حالا بینونه کوبراش میگن دیگه پالی جدا میشه حتی یکی شوهری نو کنه خوب این بود طلاق رجعی یا بایگه تعریف شد گیم به تفسیر شیخ میگه برگردانی دنی شوهر زنی خود را زنی رو که طلاق رجعی کردگیست یکم طلاق دیم طلاق مثلا و بی اگام عقد بی اقبار میگردونه خوب, مشروعیتها, اکه ایت هل اینا و گردانه ده به چی دلیل جوئیز на مگهد دل على مشروعیت رجعت الكتاب والسنت والإجماع دلات کرده است به جوئیز بودن برگرداندن الزن به نکاح, به همیشه اتو قفته اگه ما, قرآن کریم و سنت پیانبر صلى الله عليه وسلم و إجماع علمها اما الكتاب فقوله تعالى و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا الله سبحانه وتعالى مجد. و شوهرهای زن بر حق برای بازگرداندن زنهایشان فی که در عده در عیده که حالی عقیدش بود نشیده این اراد و اصلاحن اگر شوهرها خواستن که اصلاح کنند یعنی بنیت خوب برگرداند تا اینکه زنی شوهری را خوبی یعنی مردی خوب میشه و دیگه طلاقش نمیکنه که بنیت خیر اما اگر بنیت زرار باشه باید جایز نیست حرام هی یعنی مثلا زنش برگردانه تا اینکه مثلا. یعنی با عذابش بده یا بر میگرداند با قفص با طلاقش میکند تا اینکه غمش بده جایز نیست آزار داده هم عذیت نیست الله در اینجا صراحتن میگوید و بعولتهن یعنی شوهرها شوهرهای زنها سزاورترند یعنی اینها حق دارند برای برگردانیدن های خود مادامی که در عیده باشند مثلا اگر فرض کردیم ایده چند خیلی میشه حالی می اگر فرض کردیم سه حیض باشه تا یکم حیض ققشدن دیم حیض ققشدن تا سهم ققشدن سهم ابوزی کردنه شوهر به حق ترای هیچ کی حق نداره زن گیره زنوری حال زن زن همین مرد حساب این اراد و اصلاحا اگر خواستن شوهر ها که اصلاح کنه خچونه یعنی بنیتی خوب بنیتی زندگی باشه اگر پس کاری خوبه تو جایز است و الله مگات فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أي بالرجعه الله ميگه, اگر شما سر دوتن زنهای خود را و قریب آمد بودشیدنی عدهس فامسكوهن بمعروف پس اینها را باز بگردانه به نیکی یعنی زنهای خود را نگاه بدارید زنی کنه با بازگرداندن به نیکی با عذاب دادن و با ازیاد کردن الله معلوم شفه امسی که هم معروف این داله بکه که بازگردن دنیز زن یکم تلاق دیم تلاق ده مستحب باید بشرتی که سر استمار شده تلاق کرده باشه خب اما اکی دلیل ای سنت فحديث ابن عمر الماضی ذکروه حدیث ابن عمر کی همه حدیثی که عبدالله ابن عمر زن خود را سر دادن تلاق کردن و پیامبر صل... و قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرهو ف مر هو يعني عامر كورو عامر پس باز بگردونت زن اش را واختيع طلاق كرد باز بگردونه گفت واجمع علماء على ان من طلق دون الثلاث فان له رجعه فی العده قالم هو اجماع دارن کی هر مردکی سربتی از زن خود کمتر از سه طلاق پس حق داره کی زن را باز بگردونه رجعینه باز بگردونه به یگوم نکاح به عقد نه بلکه زن شیته حال ده لکی به وك اي چ حکمت داره الحکمه منها الحكمة من الرجعة اعطاء الزوجي الفرصة اذا ندم على ايقاء الطلاق واراد استئناف العشرة الزوجية حکمت از جائز بودن همي كي تو سه حيز هولي ام از همي حساب اي اگر رفتو به حيز حساب كنيم يا تو سه مره اگر حيز نميشته بشه يا تو تولت اگر رفتو حامل باشه سمو برای کسی که حیض نمیشه یا سه حیض است برای کسی که حیز میدیده باشه یا کی حمل تا ولادت کردنای برای کسی که حامله باشه مثلا شوهرش سرش داد خب اكو چه حکمت داره تایق عیده بویا ایده هم هست چونه که گفتیم در شریعت طلاق کردن در تشویق شدهگی نیست بلکه یک حدیثی ضعیفه لیک مانوس حیض کی حلالایو که حلاله یو لیکه الله بعدش میبینه مگر در که واجب شده باشه برای هم قدر راههای را الله سبحانه ماند تو است تا اینکه طلاق وقایع نشود. او گفتیم طلاق سنی همین است که اگر غذاب ولود کرد در حالت حیز باشد صبر که حالا حتی اینکه قوک شود. اگر رفت در توهر باشد هم کرده کرد باشه صبر که تا اینکه حاضر شود و قوک شود بسازد. یعنی بعدی 20 روز، و 25 روز غزاب شما ای و میرویم فرمانی. معلوم شد درهای طلاق کنیره شریعت من کرده یا کم کرده مگر در ضرورت та е едни зивдегиа пош не хра, зивдегиа додом ја ба, а мртвун садад ман до хушпакшава. Иа бакати е минес, хтто ихтилафон ун изаоб баша, ја ни беа изнешаошар, неофами гоа што, шригат фтрге е ед таа схона ода е среќни сада Аллах ми гад, а багато пакма یعنی راهوها سریعت راهو قرار دیگه خوبی هیچ امکان نداره خیلی سرش پته یا طلاقش کی خوبی طلاقش کردی با توسای حیزه حالی هم مهلت داره که به نکاح بو برگردی حالی هم زنته حساب به رقم الف میگه حکمت از بازگرداندن زن که به نکاح اینوای بو مهلت داره حالی هم الله سبحانه و تعالی فرصت داده کی از شوهر را که اگر رفت و پشیمون شد برای واقع کردن طلاق و خاص که دوباره زندگی را از سر نو شروع بکنه فیجد الباب مفتوحاً امامه در را در پیش خود کوشاده مییابد و هذا من رحمت الله بی عباده و لطفه بهم و این از رحمت الله و ب ها و مهربانی الله سبحانه و تعالی و لطف او برای بنده ها است تا اینکه اگر مثلا غذب کرد و سر داد یا اینکه قناصیحت کرد که این نشد یا اینکه مثلا میزاجش خوب نبود و سر داد و بشیمون شد بسیاری از طلاق کردگی ها شیمونن 99 درسته شیمونن و همچنین بسیاری از طلاق کرده شده ها هم شیمونن طلاق کرده شده ها شریعت باز یک فرصت دیگر اندادگی هست که تا همین ایده ی همین زن بود چیدم همین زنبود. یعنی جدا هست یعنی طلاق وقعش دگی است لیکن طلاق بالکل طلاق بلکل طلاق وقعش دگی است لیکن عملی نمیکن کارهاش و از این مگر انکه سه حیض شوه یعنی تا تو ایدا بوتشدنا مثلا یا حیض نشوه دو حیض نشوه با سه که بود شد و بازی کرد و هم بعد جدا میشه جدای ایده میگن بینونه صغرا بمید اگر یکیم طلاق باشه یی دم طلاق میتونه بگیره فقط همین که ایسر نو با نکاح نو میتونه بگیره خوب حکمت معلومه شاه همینه، طلاق چق میشه دو نو ای که طلاق رجعی هست حق داره شوهر زن خود رو به نکاح نو بې رازګي زن حتی به ولی به مہر میتونه بر وګردونه مدامې که یکم طلاقش بشه یا دیوم طلاق بشه و در ایده باشه شر شین است کې در ایده پیش ایده بود شید یکم طلاق بود یا دیوم طلاق بشه و ایده بود در ایرادې حالت افتامتیز است که اینه شوات بینونه صغرا صغرا یعنی حق داره بگیره و لیکن به نکاح نه یعنی مثلا مثالش ګویم اگر برای معلوم شیدن و توضیح اشکار شدنش همین که مرد زنی خود را یه طلاق کرد، طلاق سنی مثلا، گفت تو طلاق هستی، یه طلاق، تو یه طلاقی، همین جده طلاق شد، حتماً واقعش است. مرد سه حق داشته بار طلاق کردنه، یه حقش کم شد، دو تجگهش خب وقتی میگه تو یه طلاق هستی، در این حالا افتماسی که طلاق دیگه است خب، در هم... همین طلاق واقعی به شعر، لیکن آیا پلی حیات زوجی از بیرفته نه، فقط، حیات زوجی معلق شده است به اینکه اگر زنی حیض میشتگی باشد تا ایدش بوتشیدان خوب یکم حیضشید حالی هم زن همی استو فقط اچچش به بازگرداندنش داره مثلا میگه بیا زندگی را دوام بدیم یا مثلا میرا میوره خانه چش میگیره میاره شه تو میگه زنی ما هستی اینو میشه تا می رجوع لفظش هم رجوع میگه لفظش میگیم خیلی خوب یا طلاق کردو و یکم حیضه شد نگرداندش دیوم حیز شد نگردان، حق داره بگردن. یکیم حائز دیم خوش شد و بای برگه حائز شد و با خوش شد و بای بولگه حائز تو خوشی نشه برگردن حق داره. یکی اول که همین طلاق سیم حائز خوش شد او بوزی کرد تازه از زنگش نزد که بیا یا این نیتی گرده هالی و غذاش پایین نشیده. در این حالت همین طلاق واقعش کار کاری خود را میکنه. به این معنی که همین زن از این مرد بیگنا حساب میشود. خب تازه حائز شلوهرش اي شلوهرش بت دار اختيار شلوهرش بت هولي برام قاي خانه نمي برام لا خانه شلوهرش بت مست همین ياک بعضي ها زن سلاق ميتيه مثلا ياک по агер биста бо хубайки شوхарш мебинеш бо базме бо масалан барш мекарна да джаш алло мегат ла тухриджухунна мин буйутихинна набро ре занҳои талақ карда шударо агар талақ раҷии ва талақ чи боша аз хонаҳо набро ре срш накунед на шоҳар ҳақ дора пеш кина ва ла яхружна ва ҳамчуни худ шона ҳам ҳақ надора бо буриам барават варо ле зан ши магар зино اگر رفتو زن یت شوهرش یت طلاقش کرد هلی از این مرد حسابی بیر بر حق نداره که از خانه بره به اجازه و اکنون وقتی ساحت حيز... تو گفتین تو ساحت ح حق شوهرش شوهرش حق داره دی وقتی سهم حیزه کی شود پس آزاد میشوه آزاد شده به این معنی که دیگه زن این حساب نیست بیگانه میشواد جوش با کسی که بگیره به این معنی که میتونه همه شوهرش بگیرش بشرتی که و کسی دیګر هم بیگونه ام بگیرش میشوه یک کس دیګر بگیره فقط خوا شوهرش میگیره خوا کس دیگر بعد از حیض شدنش یعنی بعد از ایدا فقط به احتیاج به چیزا را نکاح ناو نکاح ناو مهر قطی روزیگی قطی به اگر تو سی حیض ق شدنش بر بغردونه هیچ احتیاج ندوش شوهر خودش لکی خب خو بعد ای بعد احتیاج به نکاح ناو در اگر شوهرش هم کی بشه غیر شوهرش بعد زان دیګر حق داره بگم متره نمیگیره кобат никох сари но никох карда کسی را کی خوا میگیره اگر شوهرش و میگیره یا طلاقش کم شده کی است یا بور دیگه میکره کنه یا بور گ کنه میشه تمام بر میقری پال نمیراوه خب کنه شرط های هم طلاق رجعی مالک میگات شروطها تصح الرجعه بشروط و هيا رجعه بشروط های صحیح میشه بشرد نیست بلکه شرط ها داره العدد الذي یملکه الزوج در عددی باشه Шохар кам терез ајде во шеги шохар е пак дора, вошто е толкуате за пур и две за гад. Јагмарде пак дора е, Јагзанра то فلا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اگر سیت طلاق انکید در این حالت هم دیگه به حق نداره این شوهه حلال نمیشه برای این مرد به نکاح هم حتا مگر اینکه یک شوهر نو کنه بعد از او بو شوهر سرش بده به اختیار خودش حال میگیم بچی بعد دی به حلال میشه خب خلاص کلام معلوم میشه که طلاق اه, طلاق رجعی یعنی گردانیدن زن شوهر زن باشاتیا اسکی یکم طلاق باشه یا دیوم طلاق باشه سیم طلاق حقیقت حق نداره زیرا الله چی میگه الله میگه در سوره بقره الطلاق مرتان طلاقی که شوهر حق داره زنی خود را به نکاح بر بگردونه و رجوع کنه الله میگه دو بار است یکم بار سر میتیه فیمسک به معروف او تصریح به احسان بازش میگردونه به نکاح و به مهر یا اینکه مثلا نمیگردونش میشواد طلاق باین صغرا جدا میشه بوا بهر دیگر بوا بهر که سرش متا یا بارش میگردونه یا اینکه مثلا چی می است سعی داش بونش کسی گ میگیدش مثلا اینو آن. اما الله میگه سین طلقها فلا تحل من بعدو حتی بعده حتى تنكح ای غيره ابسیمه الله میگه اگر رفت یک بار بعد دو بار با سهمش کی سرداد اگر رفت سیم بار طلاق کرد فلا تحل له پس حلال نمو بشه این برای این مرد حتی که ایزا یک شوهر دیگر کنه غیر از این شوهرش در این حالت با حلال میشه کن. با شرطی که این شوهرش سر بتو و اولی بس الاشه بزیکن میکنه خب شرطی اول معلومشت به همین است که طلاق رجعی ده یکم طلاق باشه یا دیوم طلاق باشه سه یوم طلاق که که تاون به همین جدو جدا میشه دیوم شرطش ان تكون المطلقتو المطلقتو مدخولا بها لأن الرجعة لا تكون إلا في العده وغير المدخول بها لا عده عليها شرط الديما مينسكي إن زنش کی طلاق کرد کی حق برا برگردونه باشه کی با این دخول کرده باشه دخول يعني همخوابگی کرده باشه یا خلوت صحیحه یا حکم شرعی خاص خلوت صحیحه تا قران حدیث نیست لیکن اجماع قول صحابه هست و همچه اجماعی عالماست کی خلوت صحیحه هم حکمی همخوابگی را میگیره خلوت صحیحه یعنی یک مرد با Агар ми хос, хам хој, ми кад ми кад, леки не кад, ајби хидеш. Маслен. Баде, хами сареждот, дијазан, чиј сопешаа, зени ес, го ја ке пукми хамун, мадхул биора мигра. Дујум, ахуб. Ако рафту пеш ази боша, во малиф мекаба рамка една дора. Јас на, што, ами никох кардот, дајаш холад, една дора, во мабни бари, хам хак бозгардон една дора. Зер من قبل أن تمسواهن ثم تلقتمونهن الله م개�иш ايقا صناك اмоان وقت والدي وفي السر 않 thom taught ثم تلقتمونهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بعد ذون سارد Deta اس وقت تمس مس يعني آخابك فما لكم عليهن من عدة تعتدونه قوم به في أ bru pointed لكي شما ilk شمور يعني ماهر دا هزان سارد لا زوجه بعد ذاه ا از این طرف نکاح کرد و در جوش سرش داد یا بم عیده داره نه عیده هیچ نداره عیده نداره خب وقتی عیده کې نداره شوشه ا دېګزانی حساب نیس و حق بازگردونیدنم نداره برایو قدر شرط که کدا و حق داره باز بگردونه ا زنه کرد و عده عده هم خوگی کرد یا اینکه نکاح کرد و خلوه صحیحه کرد و سرش داد دای حالت حق داره کی بو تو سه عیده شید ا تو عیده بچید عیده یعنی هم مهلاتی کی معین کردګه مثلا حایصه حایض مثلا ییکه واضعه حامل گوزشتنی حامل اینو بای. سيمش شرتي طلاق راجعها من أسكي أيكون أي الطلاق بغير عيوض طلاق بعيوز بوشة طلاق إذا حاق درشة وعار زانشة بإيجازات شبار بقدونا تو إيدش بود بيشة إيدش بود شيدان بشرتكي طلاقش طلاق عيوزينه بوشة يعني ده مقابل كل جر طلاقنا لأن العيوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج ولا يحصل ذلك مع الرجعة فلا تحل إلا بعقد جديد برضىها زلمة جد بعيوز أجر بكل سهرة باشه زن خود را و زن پول داده باشه تایی که خود را آزاد کنه از شوهر ده این حالت دیگه چی این شوهر دیگه بولش حق نداره ها یعنی هم پول میتو با و هم قولی هم دای. در مثلا زری شوهرش حساب به همین پولا که داد شوهرش که شد و بدی تمام شد مالکی نفس خودش می شوه زن پس اگر خواست بگیره میتونه ها لیکن الا عقد جدید و برضا ها از بنکاح و روزگشت دوباره يعني اگر افتر شوهر اذا خلع بود اذا احكام شكش تدين احكام خلع بود يعني طلاق او انك جدو شئی باته با مال با عواز با فول شرط 4 ما قد ايا صحيحا كسي حق دار او که زن خود بار اصلا صحيح بوشا. فلا رجعت اذا طلق في نكاح فاسد اگر زن خود رو در نکاح فاسد طلاق کنه حق رجعت نداره زیر نکاح شسوم فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق وقت النكاح سينا بش طلاق سي نمشوا لأنه فرعه وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة، وزيرو طلاق فرعي از زواج اس يعني فرعي از نكاحه نكاحك اصلا سي نمشوا يعني كذا صار طلاق ما كانكي اصلا اي فإذا لم يصح الطلاق ووقتك طلاق وقعنا شود, شود. لم تصح الرجعه بوز رجعكدان شو سي نمشوا يعني مثلا انسان نکاح کرد مرد را زن را به ولی مرد نکاح کرد زن را به ولی نکاح به ولی فاسیده خوب. اگر گفتیم کی تا سر باید سر بته یو که فسخ شده کی است این نکاح نکاح بیکره وقتی بگیم مثلا طلاقش کیه طلاقش کرد مثلا فسخ کیه طلاقش کرد اوه حق داره با پیش از عده با بر بغردونه به نکاح میگیم نه یا برید نکاح بر والی نکاح زنه قطی همین زنه بچی به رجحه منه، وقول جمهوره وصيحه نكوح بيه السبالي، صيحه نمي شبه أحكام شا كرده بيه مغارين كي اكاس مقلدي مذهبي حانفي باشه خيبار يخدشون دار دوب حكم يخدشونه لكي ده الحديث اهل حديث وقول جمهوره علمه وهمي صيحه خلوفش باطيلا كي نكوح بيه والي صيحه نست، شخص معينا حكم كرده بخدش تفسيلات خيشه دوره پانجم شرطش مباد ان تكون في العدة. همین بازگردانی دنی زنی که شوهر یکی زنی خود را سر است در عیده بازش بگردانه اگر افتو عیدهش که بود شد در حالا دیگه حق نداره باز بگردانه ای را لقول تعالی و بعولتهن حق بردهن فی ذالک الله مگت شوهرهای این زنها شرطی که در عیده برگردانه اگر افت بعد از عیدهش بچی تمام دیگه بینونه صغرا میشه یعنی جدا میشه جداشت یعنی میده که برای این را برگرداندن احتیاج به چی داره که احتیاج به نکاحی نداره شرط ششم ان تكون الرجعه منجزه فلا تصح معلقه انا رجعت باید در حال باشه یعنی بگم متر برگرداندید یا تو بیا زندگی کنی تو زنی می مثلا خیلی حساب کنه فلا تصح معلقه معلق چهینه معلق این به این شرط مثلا این حصل کذا فقد رجعتک اگر افت مثلا موی رمضان در آمد مطرح باز گرداندگی اگر افتو پدرت ای آمد مطرح باز گرداندگی بگه صحیح نمیشه باید در حال بگه بیو بگه مثلا زندگی میکنین تو زنی من هستی گفت با همین نیت کرد قصد کرد میشوه چی میشوات زنه خوب بما تحصل رجعه اکنون رجعات با چی ثابت میشوه با چی صحیح زنه يا طلاق كرد يا كي ديم طلاق كرد تو كه حق داره ولې كه چخيل بر ميگردونه ميگه تحصل الرجعه بال اولش كه رجعه يعني بوزگردندنه زن دو خل است يكي قولي هست و يكي عملي قولي هست و فعلي يعني مثلا قولا برگردونه و ميتوانه فعلا برگردونه يعني با عملا خوب يا كه ميگه تحصل الرجعه باللفظي حاصل ميشه واقع ميشه بوزگردندنه زن با تلفظ كردن لفظ هاي لفظ هاي رو و ميشه زنش گفت РАЖАТЕМ РААТИ БАЗГАРДАНИ ДЕН ЗАН АМРА Шاهид шарта ест? НЕ. Блага мустحеб. Шاهид би да го бери. Меселон, два кеса бува шاهид шо е, یка кеса бува шاهид шо е, и зан ма бар гарда да ги, и зан зани ме не е. Меселон, благо, ки, РАЖАТЕМ РААТИ БАЗГАРДАНИ ДЕН ЗАН АМРА РАДТТУХА РАДТА БАМАНИ БАЗГАРДАНИ ДЕН И КОМАНИ ДЕН И یعنی زنداریش میکنم ورجعتوها بوزگرد یعنی زنی زنیماسی گفت بیا خونه زندگی را دوام بتیم خیری قتی میشه چی همه لفظ های چی است لفظ های بازگرداندن طلاق به با همین گپ که گفت تام دیگه هیچ چیز بنی کا نداره و بعضی علما میگن بعضی کتابه راست که مثلا نکاح داره این وای چیش نداره اصلا میکنه چیز نداره خب به همین گپ میشوه یعنی گفتوز دیگه زنیما هستی مثلا بیا گفت زندگی کنیم تو را Тоа аз мани гуфт. Мисто хаме лафзоха ра меган че? Бааи рачаат саи мисто. Хоб, ойо зана Донесена шарта не шарта не шарта мисто мисто хабба. Мисто хабба ке зана обгамат ра гардон дегем тоа енкі би ташвиш шва ке хаим хаим зани хаме бид, дегаи не метона ке бачите бачите одаш шавар кена. Мисто хабба. Шахид овардена мисто хаим че хакмаш мисто хабба. Шахид, ја хаме гапа, ёкан си ёдо к во мито می توانе шовهар зан رو برگرده. Дува мегаат, و تحصело би وط иззوجете нава не во بدалека رجعتها. و همچنین رجعت صحیح می шове بفعل. بمثل همخوابه ги ки на ки ният ки на бозгардања. رفت همخوابه کر قطعش به ки боз بگرد. یا مثلا همخوابه کر به нияте ки занеш шва به تراجع الزوجة الزن شوهر زن خود را دخیل и یا که با قول بگه یا اینکه با عمل عمل میشه هم خوابگی کنه یا که مثلا بچانش کنه اینو خوب و من احکام الطلاق الرجعی اكنون hukum طلاق رجعی طلاق رجعی چی hukum ها داره از جهت اینکه مثلا شوهر زنش هست یا زنی که طلاق کرده شو طلاق رجعی را یعنی طلاق رجعی قبوا و بفهمی کی مثلا یکم طلاق یا دوم طلاق زوجه شو زنی این مرد حسابی مادامی که در عده هست بران قدر در این حالت میگوه کردن جایز نیست یک از دیگر حق نداره اسقلیش کنه زنی همین آدمه ای خانه باید نبرا یعنی مادامی کی در عده هست زنی همیه لها مال الزوجات من نفقه و کسوت و مسکن و كسوه و مسکن و میگاد حق در шохар شوح... миш زن حسابات бояд шохарш нафақаш кунад то идаш буд чида бояд шохарш либош بخрад то идаш буд чида бояд дар маскан пул квартираш бояд шохар бата ё бояд дар хонаш шохар биста ин ба ки дар ҷош талоқш ки кард хато зинат бата تخون پدر و مادرش کیرد بجا دیگه با واسطه کنه ها پس پدر جزیر میکنن رجعت واقع چقادر زن های اگر پدر و مادرش نروه زندگی شون گل گل تبدیل میوبه یعنی زندگی ش خوب میشوه اول که خانه پدر و مادرش کار یابره لایتر میشوه جزیرتر میشوه تختی احکام شریعت امینه الله که لا تخرج نه بروری وقتش نه Мадаме ки дайрии хилав мајде хас, солху имкон имкан дар. Вакети калон шкалава Магар макарам хартира ба рази кинем. Во алейха ма алейхин мин лузоми льма ска. Ва ха ин зан лазим е ки хаме лазим би гира. Ха хона шохар не барае. Ва ла ха анта тезијна ла ха хак дара ки ин зан худ рази на бата. Зеба куна, хушру куна. ويхлова биа, војтаува. Хилват кене, значи ами се, бараче да е хон, ја хонарис, биданија ја бираме. Хилват ба, биени ешо јоизе. Војтаува, воат е кене, воат значи хам ховачеш јоизе. Виареф умемтераме, виареф колн دين أحكامش لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أوليها شارنيز دار روجو كادان روزي جيزان خدش بقى ما روزي أنت براب... يا أبو يا أبو مالا بيجي ليه رجع شارسي روزي جيزان أوليها يبقى ليه ولش بقى إني ما ديجت يا كم تلقطها يدهم تلقطها ما ديجت رناميت بقى حق نظرة زير الله مجد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها شو هارهش صذورته بحق طلان مدام كيزان در إيدهاس أقرب خان خود به راه زندگی را اصلاح کردن و خوب کردن زندگی با خوبی راه ينتهي وقت شریعیه یان ته وقت رجعتی با انتهای عیده وقت بوزگردوندن حقیقی بود میشوه با بوتچیدن عیده اول که عیده بود شد بود میشوه و بثلاث به 3 حیض از آنیک اگر حازمی ده وشایس حیز انتظاری میکشه عیده طهرت الرجعیه من الحيضه الثالثة ولم يرتجعها زوجها ووق که عکس هم شوهرش بازش نگ بازش نگرداند دنا منه بینونه صغرا و د ی بین باينو... این زن از این جدا می شود تاجیکیش جدا می شود جدواشی یعنی بینونه صغرا واقع می شود بیننه صغرا چی است اکرن مؤلف میگه همی که فلم تحل له الا بعقد جدید من ولی و شاهد عدل پس این زن برای این مد حلال نمی شود مگر بعقد نو بشرتش ولی باشه و دو شاهده عادل باشه و زن راضی باشه وقتی کی راه میگه بینه صغرا برقه با بینه صغرا چی را میگه یعنی یکم طلاق یا دیم طلاق حیز بودشید و ایدش بودش نگردوندش کی راه میگه بینه صغرا خب حکمش چی است گفتیم اگر رفتو پیش حیز بودشید ایدش بودش برگردونه احتیاج به نکاح نداره لیکن بعدی کی ایده بود شد احتیاج به سرا نداره بینه صغرا معلومش شه حلال نمیشه با مگر با عقدی ناو بینونه سغرا همون زنی هست که یکم طلاق یا دیوم طلاق ای و ایده بازش نگردان یعنی رجوعش نکرد ارجاعش نکرد زن را باز نگردان شد بینونه سغرا حلال نمیشه ای را دوباره مگر با عقدی میتونه این مرده بگیره؟ میتونه کسی گره بگیره خوب کده وقت بینونه سغرا میشه با اف احکامش یکم طلاق که پیش از دخول واقع شده باشه عموما میگونده. طلاق پیش از دخول بینونه صغرا هست یعنی مرد نکاح کرد بازنه زن دجوش سرش ده. طلاقش کرد اینو میگن بینونه صغرا شد به این معنا که یک از اون سه طلاق کم شید و پس بخوا با هم زنه بگیره احتیاج به نکاح نداره دیو یا بعیواز باشه اینا بینونه صغرا میگن کدا کدام حالت ها ده بینونه زن از خود جدائی لکی جدائی میده دې ميدان منځ کې علی اقصي اكس مګي کې به یې کوبراش مګي زنې کې خود را به پل ف... نکاح خود را فسخ کرده باشه یې بینونه صغراه ہے به معنی کې برای همې زنې دوباره گیستانه اته بچی دره احتیاج به نکاح نه یو د نکاحی باشه د نکاحی فاسید هم نکاحی فاسی نکاح فاسی نکاح فاسید بینونه است صغراه از به معنی کې همې زنې گیستانده ایسر باید نکاحی نه وکنه خب ای بود بینونه صغراه خب مؤلف چی احکامش та го одува рѓењето и баиното што се звужеа неговиот звужеа, на што остана од неговиот број на разводи. Зенекот разводи рѓееше, а баиното што се шавареш би ги рѓееше, остана од неговиот број на разводи. Тоа значи, да кажеме, што се разводи, а потоа тоа што براحت <تصفيق> هم عدد طلاقش کم میشوه يعني يا مرد به زبان اگر سه حسابو طلاق دادن حق داشته باشه اگر رفتو طلاق کرد طلاقش واقعیه فقط همین قضیه قحقوم دره خب بعد میگم اگر اكو وقتی که سه تا سهمش دیگه چی میشوه استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثه اگر رفت همون حق طلاقنیهای سه گونه ای که وبانت منه بينونه كبرى بل بينونه كبرى мешава чудо شوی кланеки аки чи фардараз اون صغرا همین اسکی فلا تحل له حتى يطئها زوج غيره بنكاح صحيح باسکن زن حلال نمیشه برای این مرد حتى یک يك شوهر نو کنه و شوهرش به او هم خوواگی کنه بنکاح صحیح بنیت زندگیه ولیک د نصیبش بو شوهر حق داره کی پس همیزانه را بگیره یعنی سهام طلاق کرد، پس حلال نیست ای برای این مرد حتی اینکه یک شوهر کنه خب شوهر را به نیتی زندگی کنه شوهر اگر رفت و به نیتی حلاله کنه مثلا به حد مهمه یک نکاح نکاح حلالش مگه تاجیکید حلالا مگه عربی زواج تحلیلش مگه نکاح تحلیلش میگن این هم با شریعت این حرام است در این شک نیست خب نکاح حلالت چی میگن یعنی یک مرد زنی خود را سه طلاق میکنه یا که سه تلاقش وقایم میشه و مسئله دیگر ای که سه تلاق باید لفظ ده مسجد سه همیشه ویتاه که مسئله علمیه سه را گفت مهم که یک زن مرد مرد زنی خود را تلاق کرد با برگردن باید تلاقی کرد با کر برگردن با کر با به نکاح ده مسئله احتیاج پیش خیلی کار پشیع ایده باشه خوب اگر سه تلاق کرد کر. با با باید وقایم تلاق کرد تلاق بازیچه فرمیده در این حالات همین زن برای همین مرد حرامه اگر ده فرزند دم که داشته باشه مگر اینکی شوهری نو کنه و او شوهرش او را مثلا سر بته. مرد زن خود را سه طلاق کرد یعنی سه طلاقش واقع شد. یعنی حقهای طلاقش بود شد. خیلی گویه مگر حقهای طلاقش بود شد. خوب به با صحیح باشه اگر با کسی دیگر. نکاه صحیح چیست؟ بنیت زندگی همین زن بنیت زندگی کدم با یک مرد رفت نکاه کرد. ولیکی شرط با همین است که با او همخوابگی کنه حتما یه که باشه مهم خوابگی با شد و بعد به تقدیر الهی نکاح نشد. ای زندگیشان دوام نیا و این مرد دیوم شوهر دیوم به اختیار خودش سرش داد و عیدهش که بودش میتونه که به این شوهری, ای شوهری که تلاقش کرده بود سی بار و با میتونه ایرا بگیره. خوب شرطاش ای که اگر رفتون نیت حلاله در ایجا شد نکاح باطل میشود. نیت حلاله از خو ای زن نیت کنه یا شوهر دیم نیت کنه یا ولی زن نیت کنه همینسه کس یگونتش نیتی حلالا را نیت کردن باید شوهر دیگه دادن نکاح صحیح نمیشه با این مرد دیام زنا حساب و همچنین برای اولنگینان هم بربگردان با, با یک مرد یکم با, با صحیح نمیشه حلال نمیشه اینا میگه نکاح تحلیل یعنی حلاله بشور گنای بده در توجیه بر در بعضی جاها بعضها استفاده می برند لیکن جه لا. زیرا داره جه علما ابن كثير رحمت الله علیه می گوهد هفت حديث يومدهگه است درباره معن کردن پیانبر صلى الله عليه وسلم از نکاح از زیواج تحليل حديث نصایه و ترمزیری وعد میکنه پیانبر صلى الله عليه وسلم ابدا ابدا ابدا مسعود می گوهد لعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له پیانبر صلى الله پیامبر صلی الله علیه و سلام لعنت کرد مردی حلالا کننده را یعنی شوهر دیو ما یا حلالا کرده شده برای او را شوهر یکما حتی لعنت کرد اگر رفت نیت کنه خود حبی مجلس اتفاق کنن بپول یا بپول یا اینکه در نیت چون باشه یعنی مثلا ولی زن با مرد اتفاق میکنه میگه سبحان الله دیوسی به شک قدر در حدیث گفت پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن این مرد گفتن از المستعار تیس یعنی Баре бекамони و енивај, ке амонат ги истаме се во енивај. Субхан Аллах. Пијан бар Салях Аллаху Алайхисалам, ела лагнат карда. Хуб. Мрд, مرد Срата ше го е мажар. А сина не што. Никој ки сеине не што. Мисал, јаг мрд е зана што се талакка раф го умнијар не каркаме, иза не ми ги рече. Ихотиз денеки ми рече, сареш ми рече. Тој е кој баројшав, аријакум ше барбукарда. И харам е, харам е, кадаан. Гато алуме, ибн Тайма, рахматуллах عليه, китаби драл, икавате далил, алабтатале, тхалил. Пансет сеифат дривора, субат драл. И баже улумо, ијмави саһаба, за ке кардене, кои никој халала, харам е, и сеине мисева. И никој халала му حتى عمر رضي الله عنه ما گوت کس همین محلیله یا محلله پیش ما بیارن من گوت اینا را سنسور میکنن يعني یعنی مرد کی حلاله میکنه محلله يعني شوهر کی راضیه براش حلاله کرده شوه و قول جمهور عالم ها حنفی و غیر حنفیو جمهور عالم ها همین است حنبلی ها و شافعی ها مالکی ها و ابو یوسف یہ قول ده مذهبی حنفی ها سی قول ابو حنیفه است قول باطل بازی ملامه به با هم قولی در بعض کتابا تکیه کرده اجازه میده بعض ملام بخشان حلال میکنن این بی‌ناموسا خچنده مثلا نکا میکنه ی شب بعد میگه بیا پا پا بگیرش اعوذ بالله علی کلی حال قولی علم ها هدا بلکه اجماع صحابه است کی حلال حرام و بعض کتابا هست کی مثلا مکروه قولی باطله. زیرا لعنتی پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت به حرام بودن میکنه لعنت پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت به فاسد بودن میکنه اسې نفریت چې اگر رفتو حلاله را نیت کنه حلاله همون یعنی تو اینکی حلال شوه اې زن برای شوهر شه شوهر یکم شد سوراتوشو گفتم یکم کی یک مرد گویو کی با کار خودش کاری خوب میکنم گفت یا زنه میگیرم گفت بای قپس میتونم میتون تا اینکی شوهر یکم شه حلال شوه او حلال میشوه نه خوب یکم دیوم ولیش همین نیت کرد ولی زن خاص کی مسئله یک مرد به رابطه با این نیت کی مثلا موقته خوب ای حرامه никој фосил, еми хтеа, еми, еми никој е кагишан диум, никој е кагишо, сеине нешто. Никој диум, ке сеине што, пас, баре едекум шаварш, халал не мекаре. Васеја ухидизан ниеат кар, дадилиш. Когуфки ма салама ја шавар ми кнам, маква териб сео мешавала, ајде би Аллах панати. Брака шејхусоми тамиа, сет талакарија талак ми бијат, таа вие дади хадиса, пас би шак. Хами мазаба мегиран и ботила и хилаа е дозвои شرع яна масалан баде ки хис талак е талак исоб ку бехтар е ки халала кохи зеро се талак е талак исоб кардам ба шартош е хадисан да замони пайгамбар ва хилафати абу بکر ва бадияти хилафати умар се талак е талак бод я шовхар мекунам ефта пас джанжал мегирам аз салам тоа енке сарам бета, не е нието шаме е вактві никах да, ао рази ми ми бигеремо, но и афта пас хона ша да било шапа мекерем, тоа енке мара сар бета, а афта шовхар ёкема бегерем. Айо ами никах сахи шуд? Нее. Айо ай зан шовхар сар бета, ба якем ша халави месе, а асла. Ако шарта шаш че ест? Никах сахи беше. Никах беше. Ами саи ненавар, нието шам нието نه اوس کورا د مجلس اتفاق نه بد تر یبه را یعنی مثلا مگم برادره تمری بیږهفته نه و بعد ی هفته صد حرام قطعیه د مجلس کې څوک جرغ نشته تر د دلҳо به جا کردہ شوه در مجلس د وقتی نکاح بگن که مثلا موقته یعنی مثلا بعد سرش میتی خوب و از سه نفر چه اگر نیت کنه اره مګان نکاحه بته نکاح برای حلال نکاح باشه به با این معنا حتمان همخوابه وقعه شبه حديث رفاعي را... قراضي رضي الله عنه كي زن خدره زن همون خلصا حديث صحيح هست مرد زن رو گيري وخوص ساربت وبيانبر صلى الله عليه وسلم قفت ني قفت برو شبهر یا كمش حلول نمي شبه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك عسيلتك قف حلول نمي شبه حتى ينكي بوتو همخوابه كنا حتى ينكي بوتو همخوابه كنا بويت همخوابه ك يعني حتما بوت حمخوبگی به علاوه اجماع در در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله گفت تو برای شوهر یکم حلال نمیشه حتی اینکه حمخوبگی واقعا باشه بین شما بین شما حمخوبگی واقعا یه بارم که باشه ولو یه بارم که باشه مهم حمخوبگی حتما باید واقعا باشه بعد که در نصیب نباشه اینو به تقدیر الهی که زندگی ش و نکاح حلالات باطل است باطل و فاسد برای زن یکم برای شوهر یکمش حلال نمیشه و بی کی دیوسن و بی کی بو گناهگارن با وجود این با نیت بچا نمیرسن با نیت بچا نمیک که برای شوهر یکمش حلال شوه گفته بعضی ها این کارو میکنن خطا هست برای شوهر یکمش حلال نمیشه باید نکاح صحیح باشه نکاح صحیح همین است که با نیت زندگی بگیره همین ولی کن ده نصیبش و Вазнитеги во овој тухори не ги рифту, а сардот шавари дијам, не го крене. Никош сеи боша, хам хабаје и во кешева, во зан шавари дијам, бе изхтиори хидеш, сарбата, и после е добијеше, и после бе никош сеи, бе валиу, бе шавиду, бе инуал, бе баро, на ке, овој занра добра би ги ра. Овој бе апкави шариат, апкави шариат албата бозичени е, ке хар инсон по баят инсондри бо ഖуръон ва сунната пайрави куна ва аз ഖуръон ва суннат бояд чи ру нагардона ва қоли фуқаҳа модаме ки далил надоран қоли батилаи қоли фуқаҳа агар чи хеле фақиҳ бузургам ки боша соханш бе далил эътибор надора сохни фақиҳ хуб طلاق میشهد رجعی، طلاق میشهد با این. و با این با دونم است طلاق با اینی بینونه ای است هست و بینونه کبراه است. و هر یه به خود احکام خاصه دارد. تفصیلات چه ذیکر کردیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.